بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلق خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ و جعلن ظلمات والنیو اماللذین کفرود و بنام خرابنده که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی و روشنایی را پیدا کرد با این هم کافران به پرورگار خیش دیگران را مصابی قرار می دهند <تصفح> اگر از آن کنند، که شما را از جل آفرید. تفسر مبتیرا برای شما تأیین کرد و اجلاس آینی شدن از او. با این هم شما شک نیبردی. و هو الله بسمو و توب الأرض يعلم جرهم و جهرهم ما يعلم ماتریون. اوس خداوند در آسمان و در زمین پنهان شما و آشکار شما را میداند، و نیز چیزی را که شما کسب می کنید می داند من من هیچ آگه ای از آیه های پروردگار به ایشان نیامد مگر آن که از آن روی بودند راقدن جنبو بالحث لما جاءه فسوف يأتين انباء ما كانوا به يستهزئون آنان حق راهنگامی که سراغشان آمد انکار کردند ولی بزودی خبر آن چرا به با باد مسخره گرفتند به آنان می رسد ألم يروكما أهل السماء قرينين من قبر ما من قرن كنا في الأرض ما لم تكلّلهم وأرسلنا السماء عليهم وأرسلنا السماء عليهم من درار وجعلنا تحت هم فا اهلتنا هم فا اهلتنا هم بغنوب هم نمی بینید چن اصلحای را پیش از ایشان حلاک کردیم؟ ایشان را در زمین طور استوار ساختیم که شما را به آن قسم استوار نگردانیدیم بر ایشان بارانهای پیافی را از آسمان فرو ریختاندیم مطایشان با جوی بارهاوی سرشار دادیم که در زیر آبادی‌هایشان جریان داشت اما با این هم آنها را به سبب گناهانشان هلاکت ساختیم و بعد از ایشان نسل دیگری را به میان آوردیم اگر بر تو نوشته ای را بر ورق فرو می فرستادیم و آن را با دست های خود لمس می کردند باز هم یقینا کافران می گفتند این نیست مگر جادوی آشکارا وقالوا لو انزل علیه ملك ولو انزلنا ملکا لقضی الامر هم لا ينظرون بعد گفتند چرا به او فرشته نازل نشده است و اگر فرشته را میفرستادیم فرستادیم موطوب یک بارگی حل و فصل می و برایشان مخلط داده نمی شد وَلَوْ جَعَلْنَاهُ جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبتنا علیهم ما یه جسون او را فرشته قرار می دادیم حتما وی را به صورت انسانی در میآوردیم، باز به با پندار آنان کار را به آنها مشتبه می ساختیم و من طور آنها کار را بر دیگران مشتبه می ولقد استهز برسل من قبل با این حال نگران نباش جمعی از پیامبران پیش از تو را به با باد استهزا گرفتند اما سرانجام آنچه را مسخره می کردند دامانشان را گرفت و عذاب الهی بر آن ها نازل شد قل في الأرض ثم انظر كيف كان عاقبة المكذبين بگروي زمين گرديش كنيد تا پس آنها كه آجات اله را تکذیب چه شد قل منا بسموات قل الله کتب علی نفسه الرحمة لا یجمعنكم آنچه در آسمانها و در زمین است از آن کیس بگو از آن خدا او برخیشتن رحمت را بنوشت یعنی لازم گردانید به شک او باکند شما را به روز قیامت جمع می کند که در آن هیچ شکی نیست آنهایی که خود را من ساختند پس همان گند که ایمان نمی آرند و تكنت الليل والنهار وهو هران که در شب و روز قرار دارد هما از آل اوز وهم اوز شنفا بعطانا قل اغيو الله اتخذ وليم فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان أم اكون اول من اسلم و من المشربين. بگو آیا کسی دیگر را جز خدا آفریننده آسمان ها و زمین ها می بگیرم در حالی که او که روزی می دهد و به او روزی داده نمی شود بگو به من حکم شده تا نخستین کسی باشم که مسلمان شده است و به من گفته شده که هرگز در زمره مشرکان ما باش قول اینی اخافو اینا فیت رضی عزاب يوم النازل. بگو اگر من نیز فرمانگار خود را نفرمانی کنم، باقی آن از عذاب روز بزرگ میترسم. من رفعن هو يوم اذن تقد رحمه و ذالک الفوز المبين. و این الله بضر ضرر فلا تاسف له الا هو و این یمسک فهو على كل شيء قدیر اون کس که مجازات علاقی در آن روز با او نرسد خدا او را مشمول رحمت خی ساخته و این پیروزی آشکاریست اگر خداوند به تو زیانی برساند هیچ کس بغیر از او آن را دفع کردن نمی تواند. و اگر به تو خیری رساند پس او بر همه چیزها قدرت دارد و خاید و خاید و اوست بر بندگان خود قاهر و هم اوست با حکمت و آگاه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبونكم وألطي إلي هذا الكرآن لأنذر قن به ومن بله أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا اسهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون بگو کیست از همه در گواهی بزرگتر است بگو خداوند در بین من و شما گواه و این قرآن به من وحی شده است تا به آن شما و همه آنانی را که قرآن به ایشان می رسد بیم بدهم آیا واقعا شما گواهی می دهید بر این که با خدا معبودان دیگری هم وجود دارند؟ بگو من گواهی نمی دهم. بگو حقا که او خداوند یکتاف و از آنچه شریک می آورید واقعا بیزارم الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خطوا انفسهم فهم لا يمنون انهایی که کتاب آسمانی به آنان داده دا ایم به خوبی او را پیامبر میشناسند همان گونه که فرزندان خود را میشناسند تنها کسانی که سرمایه وجود خود را از دست داده اند، ایمان نمی ومن و من اظلم امن افترا الله کذبا او کذب آیاته انه لا رسل حبالی چه کسی ستمگار طرف کسی که به خدا دروغ بسته و شریک برای او قائل شده است یا آگیاس اورا تصدیق نموده مسلما زادمان روی رستہ گاوی نخواهند دید و یوم انحشرهم جميعا ثم نقول للذین اصروا اين شركاءكم الذين كنتم تمتزون ان روز که همه آنها را محصور می كنیم و مشرکان می گوییم تان که آنها را شریک خدا می کجا هستند ثم لم تم الا الله ما پاسخ و عذر آنها چیزی جز این نیست که میگویند به خداونده که پروردگار ماست سوگند که ما مشرک نبودیم و ما ببین چگونه به خودشان نیز دروغ میگویند و آن را به دروغ شریک خدا میپنداشتند از می من يستمع إليه واجعلنا على قلوبهم اتنة ان يفطهوه وفي آذانهم وفرا وان يروا كل آية لا حتی اذا جاؤو که كي یجادرون که یقولو الَّذِينَ كَفَعُونَ إِلَّا از آنها گوش فرام میدهند ولی بردل آنان افکندیم تا آن را نفهمند و در آنها سنگینی قرار دا دا و آنها به قدری لجوجند که اگر تمام نشانه های حق را ببینند ایمان نمی آورند تا آنجا که وقتی به سراغ تو می آگند با تو با پرخاشگری برمیخیزند و کافران می میگویند اینها از پیشینیان پیشین یانند ینهون عنه و عنه و این آنها دیگران را از آن باز میدارند و خود نیز از آن دوری میکنند. آنها جز خود را خلاص نمیکنند ولی نمیفهمند. ولو ترائید مصف ولا يا ليتنا ولا نكذب و لن ناری فقالو یا لیتنا نرد و لا نکذب بی آیات من المؤمنين. اگر حال آنها را ببینی هنگامی که در برابر آتش ایستاده اند که میگو ای کاش بار دیگر به با دنیا باز با میگشتی و با آجاز پروردگار من را تكذیب نمیکردیم و از مؤمنان می شدیم بل بدا لهم ما كانوا يففون من قبل ولو ردوا لعابوا لما نئوا عنه وإنهم لكاذبون بلکه هر آنچه را ایشان پیش از این پنهان میداشتند در آن روز برایشان آشکار شد و اگر ایشان به با دنیا بازگردانیده شوند بدون شک به سوی آنچه آن من اطان بودند باز میگردند و واقعا ایشان دروگویند و قالو این ایلا حیاتن و ما نحن و گفتند جز زندگی ما در این دنیا چیزی دیگر نیست و ما باور دیگر برنگشته نمیشوین و لم تراء ينقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى و ربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون اگر ایشان راهنگامی که در پیشگاه عدالت پروردگار خیشی ساده کرده شوند ببینی بی و خداوند به ایشان بگوید آیا این رویداد حق نیست؟ در جواب میگویند واقعا این رویداد حق است و به پروردگار ما قسم خداوند میگوید پس عذاب را بچشید به سبب آنکه کافر بودید والذین الله حتى إذا جاءتهم ساعة ضبط قالوا يا حسرتنا على ما فوضنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فوضنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما واقعا کسانی که لقای خدا را دروغ بنداشتند دیانکارند تا چون ناگهان قیامت بر ایشان بیاید میگویند با حسرتا بر ما که در آن کوتاهی کردیم در حالی که آنها بار گناهان خیش را به دوش میکشند آه چه بدفت باری که ایشان حمل میکنند وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُمْ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْتِنُونَ وانی زندگانی دنیا جز لحق و لعب و بی کمان آخرت بروج مردم با تقبا بسرس پس شما درک نمیکنید قد نعلم انه لحزنك الذی قولون فنهم لا یكذبونك ولکن الظالین بآیات الله جحدون ما واقعا می دانیم سخنان ایشان تورا بهراستی اندوهگین میساسد در باقی شما را تكذیب نمیکنند بلک این ستم گاران از آیات خداوند انکار می‌ورستند ولقد كذبت الرسل من قبل كفرا على انا ما كذبو واوذو حتى اتاهم نصرنا و انا مبدل لكلمات الله و لقد جاءت بیگمان پیش از تو نیست پیامبران تکذیب شدند پس در برابر هران چه تکدیب و اذیت می شدند کردند تا نصرت ما به ایشان رسید برای کلمات خداوند تبدیل کننده نیز واقعاً به تو از احوال آن پیامبران رسیده است؟ این... كان تغوى عليك اعراضهم فإن استقعت أن نفقا في الأرض أو كل من في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهل در صورتی که اعراض ایشان بر تو گران تمام می شود پس اگر به توانی نقب در زمین یا نردوانی در آسمان بجوی و به ایشان معجزه بیاورد باز هم ایمان نمی آبرند اگر خداوند می خواست ایشان را برای راست جمع می سا. پس تو از تمره جاهلان مباش انما يستجيب الذين يسمعون وَالْمَوْتَى يَبْعَثُمُ الله هُمَّ إِلَيْهِ يرجعون تنها کسان دعوت ترا اجابت می کنند که گوش شنوا دارند ولی مردگان کسانی که دعوت ترا اجابت نمیکنند کنند خدا ایشان را بر می و سپس بس به سوی او باطك دوني دمي شبع. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولا سترهم لا يعلم. مِعَوَجَانَد چرا بر او نشانه از جانب پروردگارش فرو فرستاده نشد؟ بگو بیگمان خداوند قدرت دارد که نشانه فرو فرستد اما اکثر ایشان نمی دانند و من ما <تصفيق> هیچ جنبندهی در زمین نیست و نه که که بابارهای خود پرواز کند مگر اینکه که امتهایی هستند ما و شما ما و در کتاب چیزی را سرو گذاشت نکرده ایم و سپس ایشان همه بسوی پروردگار خود حشر می شوند والذین کذبوا بآیاتنا هم وفتت الظلمات من یشاء الله له ومن یشاء یجعله ولا صراط آنانی که آیات ما را تکذیب کردند کر و گنگ هستند در تاریکی ها هرکی را خداوند بخواهد گمراه می و هرکی را بخواهد براک راست قرار می دهد قل او ایتتم اتاکم عذاب الله او الله تدعون بگو آیا گاه که به خود اندیشیده اید اگر بر شما عذاب خداوند بیا یا قیامت سر وقت شما برسد آیا جز خدا دیگری را فرا می خانید اگر را گو حقیقت را بیان کنید بل ایهو تدعون فیفی بما تدعون ایلین و بلکه خاص او را فرام میخوانید پس آن مصیبتی را که برای دفع آن دعا میکنید اگر بخواهد دفع میکند چیز می می و چیزی را که شریف میآورید فراموش میکنید ولقد لقد اغسلنا الى من قبل که فأخذناهم بالبهد. حق را که برای بسیاری از امت های پیشستو پیانبرانی فرستادی. پس ایشان را به سختیها و رنجها گرفتار ساختیم تا باشد که ایشان به قبول حق بادار شوند فلونه از ما ولكن قسط لهم ما كانوا چرا آنها هنگامی که مجازات ما به آنان رسید خضو نکردند و تسلیم نشدند ولی دلهای آنها قطابت پیدا کرد و شیطان هر کاری را که می کردند در نظرشان زینت داد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 پس چون آنچی را به ایشان پن دادش را بود فراموش کردند بر ایشان دروازه هایی همه چیزها را گشودیم تا اینکه به چیزهایی که دادش را بودند شادمان گشتند ایشان را ناگهان گرفتار کردیم پس ایشان به با یک بارگی ناامید شدند و به این ترتیب دنباله زندگی جمعیتی که ستم کرده بودند قصد شد و ستاوجش مخصوص خداوند پروردگار جهانیان قول اراي إن ان اخذ الله ثم سمعكم وارصاكم وختم على قلوبكم من الههم غير الله ياتيكم بذلك اممن كن تصرف اياتكم انهم يضلفون بجا غير ذلك عندي اذا اذا خذوان که و بینایی شما را بگیرد و بردلهای شما مهر نهد، کیس آن معبود جز و جز خدای یگانه که آنها را به با شما باز دهد؟ ببین چطور ما آجتها را بیان می کنیم ولی باز هم ایشان رو می کردانند. قل ان اتاكم الله او جهرة هل بگو شما خود فکر کنید اگر عذاب خداوند به شما ناگهان یا آشکار بیاجد آیا بغیر از گروه ستمگار کسی دیگری هلاک خواهد شد وما مرسل المرسلین و هم فمن و اصلح فلا خوف ما پیانبران را نمیفرستیم مگر به حیث بشار دهنده و بیم دهنده پس کسانی که ایمان آوردند و اصلاح شدند بر ایشان و نه هم ایشان اندهگین می شبند كَذَّبُوا بِمَا كَانُوا و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند به ایشان عذاب می رسد از سبب این که فسق ورسیده قل لا أقول لكم عندي خزائم الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملت إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يتوي الأعمى والبصير بگو من به شما نمیگویم که نزد من خزینه های خداوند است و نه هم غیب را میدانم و نه هم به شما میگویم من ام من پیروی نمیکنم مگر آن چیزی را که به من وحجه شده است بگو آیا نابینا و بینا برابر پنداشته میشوند پس با این هم آیا فکر نمیکنید و انذر بهالذین أَن ان یحترون رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ من دونه وَلَا و لا تزیعون لعلهم یکتقون کسانی را بیم بده که می ترسند که به حضور پروردگار خیف حشر می شونده در حالی که جز وای نکار سازی دارند و نه هم شفاعت کننده ای تا باشد که ایشان بترسانند ولا تظن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم ما عَلَيْتَ مِنْ حِسَابِ اِمْ آنها را که صبح و شام خدا را میخانند و جزات پاکی او نظری ندارند از خود دور مکن نه حساب آنها بر توست و نه حساب تو بر آنها اگر آنها را تر کنی اصطا تمگران خاکی بود و کذالک فتنا بعضهم ببعض يقولون آه اولا امن الله علیم من بین علیت الله بأعلم بالشاترین و این چونین بعضی از آنها را با بعضی دیگر تا توانگران را با وسیله فقیران تا بگویند آیا اینها هستند که خداوند از میان ما برگزیده و بر آنها منت گذارده و نعمت ایمان به آنها بخشیده آیا خداوند شاکران را بهتر نمی و ایزا یؤمنون فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرغمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة من ثم تابا بعده وأصلح فأنه غفور رحيم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 وَكَذَلِكَ نفصل الْآيَاتِ وَيُتَفْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُهِينِ وَا این چونین آجات سابر می شمریم و روشن میسازیم تا راس گناهکارم آشکار گردد قُلْ اِن نُعِیتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِينَ تَبِعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قل من از پرستش کسانی که غیر از خدا میخوانید شده ام بگو من از هوا و عوزهای شما پیروی نمیکنم اگر چنین کنم گمراه شدهام و از هدایت یافتگان نخواهم بود قل إني على بنيت من ربي وكذبتم به ما عند ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يكشف الحق وهو خير الفصيل بكم من دليل رؤشني أستحضر قارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید و نپذیرفتهاید آنچه شما درباره آن عجله دارید و دست من نیست حکم و فرمان تنها از آن خداست حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده حق از باطل است بگو اگر آن چرا که شما درباره آن عجله دارید نزد من بود و به درخواست شما ترتیب اثر می دادم عذاب الهی بر شما نازل میگشت و کار من و شما فاجان گرفته بود و خداوند ظالمان را بهتر میشنالطد با اننده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و يعلم ما في البر والبحر وما تسقط ورطت ایلا یعلم تنها نفس اوست و جز او کسی آن را نمی داند در خشکی و دریاست یاست می داند هیچ برگی از درخت نمیافتد مگر این که از آن او گو و نه هیچ داوی در مستی گاو کی و نه هیچ تر و خشک وجود دارد جز این که در کتاب آشکار یعنی در کتاب علم خدا ثبت است وہ ولذین يتوفون باللیل ويعلم ما جرت بنهار او کسی است که روح شما را در شب به هنگام خواب میگیرد و از آنچی در روز کسب کرده اید و انجام داده اید با خبرت سپس شما را در روز از خواب برمیانگیزد و این ورد همچنان ادامه میابد تا مدت و سرآمد معینی فرا رسد. سپس بازگشت شما به سوی اوست و شما را به آنچه عمل می کردید آگاه می ساست. و هو القایو جاء الموت توفته وهم لا يفرقون. او تسلط بر بربندگان خود دارد و او بر شما فرشتگان را به حیث نگهبان میفرستد تا چون مرگ یکی از شما فرا می رسد فرشتگان روح او را می گیرند و ایشان هیچگاه در وزیفه خود کوتاکی نمی کنند تپس ایشان به سوی خداوند مولای برحق خیش برگردانده می شوند هان در آن روز هاک از آن عض و او در حساب گرفتن از همه سریعتر است قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر شما را از تاریکی های خوشکه و بحر نجات میدهد انگامی که او را با تضرع و با گونه پنهان می و می گویید که اگر ما را از این خطرات نجاز نجات بدهد براستی ما از سپاس گذاران می باشیم. بگو این خداست که همه شما را از اینها و از هر غمی دیگر نجات میدهد ولی بات هم شما شک یا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارض لكم او يلبز او یلبس کم سیعا و یدیق بعضتون به سبع اونو كيف نصدف الآیات لعلهم يفقهون بگو او قادر است که عذاب اثراف فوق یا از دیر فوق شما بر شما بفرستد یا شما را بنظاهاج گروهی بیا میزد و تعم جنگ و راحتی را به هر یک از شما به وسیله دیگری بچشاند ببین چگونه آیات گون را برای آنها ها بازگو می کنیم شاید بفهمند و قوم تو این قرآن را که حق است تکذیب کردند بگو من مسئول ایمان آوردن شما نیستم برای هر خبری است و پسودی میدانید وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوبُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوبُونَ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْتِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُوبُ بَعْدَ الزِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وهن قامك می بینی که در باره آجات ما به سخنان احانت آمیزی می پردازند از ایشان روی بگردند تا به بحث دیگر بپردازند و اگر گاه شیطان این مطلب را از خاطرت فراموش می‌سازد، پس چون بیاد تو آمد با گروه ستمگاران منشید و ما منشین از عمل کرد کافران بر از گران نمی شود. اما این یاد آوری برای آن است تا ایشان متوجه شوند و از خدا بترسند. و ذل الذين تأخذ ذنهم لعبا و لهوا و غرقتهم الحياة الدنيا وذكر به أن ترسل نفس بما كسبت لن تلها دون الله ولي ولا شفير وإن شعب الكل عدل لا يتقذ منها أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا لهم شراب من بما يكون. را که دین خود را به بازی و بیهودگی گرفتند با زندگی این دنیا ایشان را فریفت ساخت به حالشان بگذار و ایشان را به این قرآن پنده تا ما با کسی خود را به سبب آنچه کف کرده به تباکی بسپارد. و در این صورت برای او جز خدا کارساز و شفاعت کننده نیست و اگر به عوض خود در مقابل مجازاتی که برایش تعیین شده هر عوضی را فدیه بدهد قبول نمی شود اینها کسانی اند که با اعمال خیش خود را به تباهی سپردند ایشان را نوشیدنی آب جوشان و عذاب بس دردناک است به سبب آنکه کافر بودند قل انا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اهدانا الله ام كن و الشياقون كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى قل هدى الله هو وأمرنا العالمين أو ي جز خدا يزها ر بخانيم که برای ما نسودی رسانده می و نه هم زیانه و بعد از این که خداوند ما را رهیاب ساخت به با عقب بازگردیم مانند کسی که او را شیطانها بد راه کرده و در روی زمین سرگردان ساخته باشند او دوستانی داشته باشد که وی را برای فرا خوانند بگویند و سوی ما بیا بگو واقعا هدایت خداوند همان است هدایت و مأمور شده ایم تا خود را به پروردگار جهانیان تسلیم کنیم و این اکمون صلات و تکوه و هونلزین الانی تفشون و بما گفته شده که نمازها را به تمام و کمال برپا دارید و از خداوند بترسید و هم اوست که همه شما بسوي او حشر مشويد وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قول الحق وله الملق يوم تنقضق عالم الغيب والشهاده و هم اوست ان که آسمان ها و زمین را به حق آفرید و روزی که بگوید شو پس می شود سخن او حق است و در روزی که سور دمیده می شود شاکی از آن اوست او دانای غیب و آشکار است و هم اوست با حکمت و آگاه اتقال ابراهیم لعبیه آجرائه تتخذ اصماما آلهه اینی اغاک و في و بیا دار وقتی را که ابراهیم و پدر خود آتر گفت آیا بتان را خدا می گیری من بیگمان تو و قوم تو در گمرافیه آشکارا میبینم بینم. كذلك هو السماوات والارض آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا اهل یقین گردد بلم ما و و ما لا وقتی که تاریکی شب او را پوشاند ای را دید گفت این است پروردگار من اما چون آن ستاره از نظرش غایب شد گفت من غروب کنندگان را دوست ندارم فَلَمَّا رَأَ الْقَمَرَ بَاجِ غَوَنْ قَالَ آبَى رَبِهِ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَئِلًّا يَحْسِنِي رَبِّهِ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ بَادِهِ چون ماه را در حال طلوع دید گافت این است فربردگار من اما چون غروب کرد ابراهیم گفت: اگر پروردگارم مراه راوگیت نکند یقینا از قوم گمراهان میگردم فلمع و اچم سباز و تنقال اذا رضی هزا اصطف فلمع از چون آفتاب را در حال طلوع دید گفت این است پروردگار من این بزرگتر است اما چون غروب کرد ابراهیم گفت ای قوم من من واقعا از اینکه شما به خداوند شریک میارید بیزارم وجهه و اینی للذی فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين. من به ذات روی آوردم که آسمان ها و زمین را آفرید در ایمان خود خالصم به هرگز از مشرکان نیستم و قال أتحذني في الله وقد هدان وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِفُونَ و قومش با او منازعه کردند او گفت آیا با من در حال و خدا منازعه میکنید که واقعا او مرا هدایت کرده است من از آنهایی که شما به خدا شریک میارید نمیفرسم و به من زیانی نمیرساند مگر آن که پروردگار من چیزی را اراده کند علم پروردگار من همه چیز را فرا گرفته است آقیه فَأَنَّىٰ مُكِرُّدْ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَسْرَفْتُ وَلَا تَقُولُونَ إِنَّكُمْ أَسْرَفْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَن يُنَزِّلُ بِعَلَيْكُمْ صُلْحًا فَأَيُّ مُلْتَقٍ أَحَقُّ بِالْيَوْمِ إِن كُنتُمْ چطور از چیزهایی بترسم که شما آنها را به خدا شریک میارید و شما از این که به خداوند شریک نمی نمیتدسید چیزی که هیچ دلیلی در زمینه برای شما نفرستاده است آیا کدام یک از ما دو گروه به امن فقدار تریم اگر شما میدانید <تصفيق> کسانی که ایمان آوردند و <تصفيق> ایمان خود را به شرک نیالودند ایشانند که براستی در امن اند و هم ایشانند که هدایت شدهاند درجات إن ربك این بود حجت ما که آن را به ابراهیم در برابر مردم اشتادیم و مرتبه هر کسی را که بخواهیم درجه با درجه بلند می صافیم بیگمان پربارکار تو صاحب حکمت و داناست وأبنى له إسحاق ويعفوب قل لن هدينا وذوحا هدينا من قبل وزن ذريته داود وكليمان وأيوب ويوسف وهوسى وهارون وكذلك نجد ما به او اسحاق هدا و یعقوب را دادیم همه را هدایت کردیم و پیش از آن نوح را هدایت کردیم و از نسل او داوود سلیمان ایوب یوسف موسی و هارون را نیز هدایت کردیم و بدین ترتیب نیکوکاران را موصمی می و زکریا و یحیی و و زكريا عیسی، یحیاء با ایلیاف همه در زمره صالحان و اسماعیل و یسع و یونس و فضلنا علی العالمین و اسماعیل یسع یونس و لوت نیز و همه اینها را بر جهانیان فضیلت دادیم و من آبائیهم و ذریاتهم و اقوانهم و ایتبینهم و هدیناهم الى قراط مستقیم و نیز از پدرانشن و اولادشن و درادرانشان و ایشان را برگزیدیم و براخ راست هدایت کردین کردن. رَالِكَ این است هدایت خدا هر که از بندگان خود را که بخواهد به آن رح می کند. اگر ایشان شرط می آبردند همکار هایی کمی کردند از ایشان نابود می شد اولائکا الازین آتینا الكتاب اینها کسانی اند که به آنها کتاب شریعت و پیانبری دادیم اگر اینها یعنی اهل مکۀ معظمه قرعآن مجید را تکذیب کنند ما قومی را با آن می گماریم که از آن انکار نمیکنند اولئیکا الذین هدم الله فبهداهم کتده قل لا اسألكم عليه اجرا انهو الا ذکران العالمين کسانی اند که خداوند ایشان را رهیات سار پس براوش ایشان اقتدا کن بگو در برابر این تبلیغ از شما مزده نمی طلبم این نیست مگر پندی برای جهانیان وما الله ما انزل الله على بشر قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو دذل الناس تجارونه تجعلون تجارونه قراط يتريدونه ويسوقون كثيرا وعلمتم ما لم تعلمو أنتم ولا خداوند را تبرک شایسته شعن اوست قدردانی نکردند وقتی که گفتند خداوند چیزی را به انسان از طریق وحی نفرستاده است بگو پس کسی کتابی را نازل گردانید که موسا آن را آورد روشنایی و هدایت برای مردم اما این شما هستید که آن را ورقها می سازید یک تعداد از آن ورقها را آشکار و بسیاری از آن ورقها را پنهان می کنید و به شما چیزی آموختانده شد که نه شما آن را می و نه هم پدران شما بگو خداوند آن را فرو فرستاده و سپس ایشان را بگذار تا به صحبت بیهوده خود سرگرم باشند وَآتَا كِتَابٌ أَمْ زَلَّهُ مَاوَاكُمْ مُصَدِّقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّالْكَهَا وَمَنْ أَوْلَاهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ و این کتابیست که ما آن را سرو فرستادیم با برکت و تصدیق کننده آن کتبی که پیش از آن بود تا مردم ام القرآن و حوالی آن را بیندهی و کسانی که به آخرت ایمان دارند به این کتاب ایمان دارند و ایشان بر نماز خیش محافظت می کنند فَمَنِ ادَّعَى أَنَّ عِندَهُ أَلْحَى وَلَمْ يُرَ ضَاهِكًا أَوْ قَالُوا طَيِّئ إِلَهِي وَلَنْ يُوحَى إِلَيَّ شَيْءٌ أَوْ قَالُوا يُؤتى إِلَيَّ وَلَنْ يُوحَى إِلَيَّ إِنْ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون على ذنبون بما كنتم تقولون على الله غير الحس وكنتم عن آياته تستكدرون چه کسی سفنگار است از کسی که دروغی به خدا ببندد یا بگوید وحیه بمن فرستاده شده در حالی که وحی به او نشده باشد و کسی که بگوید من هم همانند که خدا نازل کرده نازل می کنم و اگر ببینی هنگامی که این زاد من در شداید مرس رو اند و فرشتگان دست ها را گشوده به آنان میگویند جان خود را خارج سازید، امروز مجازات خواب در برابر دروخ که به خدا بستید و بس در برابر آجات و تکبر ورزیدید خواهید دید در امروز به خواب آنها تأثب خواهی خورد. وَلَقَدْ جِئِ اُمُونَا كما خلقناكم اول مرة مَا خَلَقُنَاكُمْ مَا قَوْلُكُمْ وَلَا نُرَاءُ كُنْتُمْ تَعْتَهُسُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ خَابَ مَنْ ضَلَّ عَنْكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ بیگمان بسوی ما به صورت انفرادی آمدید درست به همان شکلی که ما شما را بار اول آفریدیم و تمام آن چرا به شما انوجت کرده بودیم به عقب گذاشتید با شما اکنون شفیه های شما را که می پنداشتید واقعاً آنها با شما در شفاعت شریکند نمی بینیم واقعاً حالا پیوند بین شما و ایشان قطع شده است بر طروق عراق بربسته بودید از شما گم شده شما را در خلا گذاشته است ان الله الخالق الحمد و النورج الحي من المیت و المريد المجيد من الاي ذاللم الله بان تكتب حقك خدوند شگاه سنده دانه و خسته خرماست زنده را از مرده بیرون میکند و بیرون کننده مرده از زنده است این است خدای شما پس چگونه از حق منحرف نیشبید فاند الاسباح و, جعل الليل و والقمر ذلك تقدیر العزیز اون شگاه پنده صبح شب را ماجه آرامش و آف و ماه را برای حساب وقت قرار داده است این است اندازگیری خداوند صاحب قدرت و دانا. الَّذِي بِهَا فِي و اوز که ستاره ها را برای شما علامه های گردانی است تا در تاریکی های خوشکا و بهر با آن رهیات شدید حقا که ما نشانه های خود را با مردم تفصیل بار بیان کردیم که می دانم و هو النابی من او از که شما را از یک شخص پیدا کرد پس برای شما قرارگاهی با وزید جاگی بیگمان نشانه ها را تفصیل بار به با مردمی بیان کردین که می فهمند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 فأخرجنا منه غضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دالية وجلات من أعناب والزيتون ورمان مشتبها وغير متشابه او برو الى تمره اذا اکمر و ینعه این نهی ذالکم او کسی از که از آسمان آب نازل کرد و با وسیله این گیاهان گناگون رویانی از آن ساقه و شاخه های سبز خارج ساختیم و از آنها دانه متراکم و از شگوفه نخل خوشه ها بارشته های باریک بیرون پرستادیم و باغه از انواع انگور و زیتون و انار شبیه به یک دیگر و شباهت هنگامی که میوه می کند به آن و طرز رسیدنش بنگرید که در آن نشانه برای افراد با ایمان است وجعلوا لله سركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانوتععمو با این هم کفار برای خداوند جن را شریک می آوردند در حالی که خداوند آنها را آفریده است و ربنا خدا بخداوند پسران و دخترانی تراشیدند منزه است خدا و برتر است از آنچه به او نسبت میدهند بدیع السماوات والارض ان لا يكون له ولد ولم تكن له صاغره و خلق كل شيء ایجا گر آسمان ها و زمین است چگونه برای او فرزند می باشد در حالی که او هرگز همتری نداشته است و همه چیز را آفریده و او به هر چیزی داناست ذالب الله ربكم لا و و هو على كل شيء آره این است خداوند پروردگار شما جزء او معبودی نیست آفریدگار همه چیزهاست پس او را پرستش کنید و هم اوست کارساز همه چیزها لا و هو و او را درک کرده نمی ولی بلی او دیده ها را درد میکند و اوست نهاویت فرلوف و آگاه قد جا اکم دصائی من ربکم فمن ارخو فلی نفسه و من عليها و ما علیکم حقا که برای شما از جانب پروردگار شما دلایل روشنی آمده سپس اگر کسی که آن را دید فایده آن برای خود او باشد و اگر نابینا شود نیز به ضرر خود اوست و من فاستدار اعمال شما نیستم وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلْيَقُونُ وَدَوَسْتَ وَلْيُبَيْنَهُ لِقَوْمِ به این ترتیب ما آیات را به شکل گوناگون توضیح می کنیم مهم نیست که بگویند درست گرفتهی تا آن را به مردمی بیان کنیم که می دانند استذع ما اوحی ایلیک من ربک لا اله ایلا هو و آنچه را به تو از جانب پرورتگارت وحجه شده فیروی کن جز او معبود نیست و از مشرقان روی برتاب و نا جعلناك علیم حفیقا و ما انت علیم بی اگر خداوند بند میخواست شریف نمی آبردند ولی ما ترا فاسدار اعمال آنها نگردانیدیم و نه هم تو کار ساده ایشان میباشید ولا تتبوا الذين يدعون من دون الله فيتبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا زي لكل أمة عملهم ثم إلى رفعهم مرشعوا فينسئهم بما كانوا يعملون کسانی را که مشرکان جز خدا نیایش می کنند دشنام مدهید تا مبادا ایشان از روی ستم گریب و نادانی خدا را بد بگویند به این ترتیب ما به هر ملت اعمالشان را آرافت جلوه دادیم و در آخر کار بازگشت همه آن آنها به خدایشان است و ایشان را به حقیقت آن اعمالی که انجام می دادند آگاه می سازد وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا ایشان با شدید ترین شدیدترین سوگندها به خداوند قسم یاد می که اگر به ایشان هر نشانه بیاید حتما به آن ایمان می بگو یقینا نشانه ها در نزد خداوند است و چه می که چون نشانه ها بیاید باز هم ایمان نی وَنُقَلِّبُ أَفْقِلَتَهُمْ وَأَبْثَارَهُمْ كَمَا لَمِ نُؤْمِنُو بِهِ اَوَلَ مَرَّتٍ وَنَذَرْهُمْ فِي صُقْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ و ما دلها و چشمهای آنها را باشگو می فاقیم چرا که در آغاز به آن ایمان ناوردند و آنان را در حال تغیان و سرکشی به حال خود با تا سرگردان شوند و لو اننا نزلنا الیم الملائکة و کلمه الموتى و حشرنا اگر بر ایشان فرشتگان را هم فرو می‌آوردیم و مردگان با ایشان سخن می‌گفتند و همه را گروه گروه در برابر چشمانشان حشر می‌کردیم باز هم ایمان نمی‌آوردند مگر اینکه خداوند می‌خواست اما اکثر ایشان نمی‌دانند بعضهم الى بعض و همچنین برای هر پیامبری دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادید برخی از آنها برخی دیگر را با سخنان سری بنده وثوثه کرده و گمراه می اگر پربرگارت میخواست ایشان این کار را نمیکردند، پس ایشان را با افتراهایشان بگذار و لیتخوا الیه افیدتو الذین لا منون دل آخرت و ما هم مخترخون و نتیجه های شیطان و تبلیغات شیطان سپتان این خواهد شد که دلهای کسانی که بروز رستاخیز عقیده ندارند و آنها متمایل می کردد و به آن راضی می شوند و هر گناهی بخواهند انجام دهند، انجام می دهند. اتَّخَذَ اللَّهُ أَرْبَابًا وَهُمْ أَهْدَى وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ بَلْ تَكْفُرُونَ مِنْ, من بگو آیا من به جز خدا حکم دیگری را طلب کنم؟ حالان که اونست که کتاب را با تفصیل برای شما فرو رو کسانی که ما به ایشان کتاب را دادیم خوب می دانند که براستی این قرآن مجید از جانب پروردگار تو نازل شده است پس هرگز از جمله شک آوران ما و کلمت لا سخن پروردگار تو با انصاف برافته تمام شد هیچ تبدیل كننده برای سخنان او نیست و هم اوست شنوا و دانا و تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأرض اگر تو را بسا از کسانی را که در روی زمین اند پیروی کنی تو را از راه خداوند گمراه می ساتند. ایشان راهی جز گمان تعقیب نمی کنند و ایشان جز تخمین کار دیگری ندارند ان رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَزِرُ عَنْ سَجِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُحْتَجِيلِ واقعاً پر برگار تو به حال کسانی که از راجی او گمراه می شوند خوب آکاف و هم او به حال رحیابان خوب آکاف بنابراین مما ذكر اسم آن از آن حیواناتی بخورید که بر آن در هنگام حلال کردن نام خدا گرفته شده است اگر به آیات او ایمان دارید وما لكم أن تأكلوا مما برس الله عليه وصدق قال لكم ما حضرم عليكم إلا ما نورتم إليه وإن كت واللوب اللولى أفواههم بغير علم این هو اعلم چرا از چیزهایی نمی خورید که نام خداوند زبح شده است در حالی که چیزهایی که خدا بر شما حرام گردانیده به تفصیل برای شما بیان کرده است مگر در حالی که از آن چاره نداشته باشید اما بسا کسان مردم را به هوای نفسانی خود گمراه می ساتند. بدون که از علم بر باشند بیگمان گمان پرورگار تو هم اوست که به حال تجاوزکاران خوب داناست و همه گناهان آشکار و پنهان را ترک کنید باقا آنهایی که به گناه می شوند به سودی در برابر عمل کرده خود جزا داده می شوند وَلَا تَأْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْجَرِفُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِشْفُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَنْ و این این از آن حیواناتی که بر آن در هنگام حلال کردن اسم خدا گرفتن شده است نخورید این واقعا گناه و فیکمان شیطانها هم باره به دوستان خود وصفت می تا با شما مجادله کنند اگر از ایشان اطاعت کنید واقعا مشرکید أَوَا مَنْ كَالَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِعٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ ذِيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَنُونَ آیا کسی که زنده نبود و ما با او زندگی دادیم و به او روشنایی بخشیدیم که با آن در میان مردم درود یعنی راه خود را بیابد مانند کسی است که در تاریکی ها قرار دارد که از آن هرگز بیرون آمدن تواند. به این ترتیب برای کافران کردارشان خوشاوجند جلوه داده شده است وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قُرْيَةٍ اَتَادِ وَمُجْرِمِيهَا يمبرو يَمْبُرُونَ فِيهَا وَمَا إِلَّا وَمَا و, و همچنین در هر شهر و بزرگان گنهکار قرار دادیم افرادی که همه گونه قدرت در اختیارشان گذاردیم اما آنها از آن سوی استفاده کرده و راک خطا پیش گرفتند و سرانجام کارشان این شد که به مخر و فریب مردم پرداختند ولی تنها خودشان را فریب می دهند و نمی فهمند وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَمَّا نُؤْمِنُ حَتَّىٰ نُدْخَلَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ يُوسُفُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۗ أَمْ تُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ وقتی که به ایشان نشانه ای از جانب خداوند بیاید میگویند ما هرگز ایمان نمی آبریم تا نشانه همانند آن به پیامبران خدا داده شده است به ما نیز داده شود خداوند جایی را که در آن رسالت خیش را مینهد بهتر میداند و زودی به گناهکاران در پیشگاه خدا بنسبت دسیسکاریشان رصفایی بعذاب شديد ميرسد فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء یجعل الله علی الذین پس کسی را که خداوند بخواهد هدایت کند سینه او را برای اسلام باز می کند و کسی را که بخواهد گمراه کند سینه او را طور ناآرام و تنگ می سازد که گویی به با آسمان بالا می اینچنین خداوند عذاب را کسانی که ایمان ندارند می گمارد و, و, مستقیما ال و این را که پروردگار توست راست حقا که آیات را برای قومی که پند پذیرند به تفصیل بیان کردیم. لهم در سلام عند ربهم وهو و هو ویون بما كانوا برای ایشان در نزد فرورگارشان خانه با ام می باشد و هم اوست دوست ایشان به سبب اعمال ای که انجام می دهند وَأَمَّا أَصْحَابُ الْجُنُودِ فَيَمْشُونَ فِي سَكِينَةٍ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَشْتَاقُونَ إِلَى رَبِّهِمْ وَأَمَّا أَصْحَابُ الْأُوتَادِ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ أَهْلُ الْقَرْيَةِ وَأَنَّهُمْ لَنْ يُقْضَى قَالَ مِنَّا وَمَسْوَاكُمْ قَالِلِ نَفِيهَا إِلَّا مَتَا أَوْلَهِ اِنَّ رَبَّتَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ با امروز که خداوند همه ایشان را جمع کند و بگوید ای گروه جن شما انسان های بسیار را تابی ساختید دوستان ایشان از انسانها می گویند، پروردگارا، ما از یک دیگر بهرور شدیم و به موعدی که به ما تعیین کرده بودی رسیدیم، خداوند می گوید، آتش رهایشگاه شماست، در آنجا همیش بسن می برید مگر آنکه خداوند بخواهد، بیگمان، پروردگار تو صاحب حکمت و داناست. وكذلك والذي بعط القولين بعضا عندما كانوا يكتبون بان ترتيب ما بعض ستمغارن را بر بعض دیگر مثلث نسازيم بسبب اعمالك مرتكب شدهند جاء ما اثر الجن والانس الم يأتكم وصول منكم يطفقون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم آباء قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على ای گروه جن و انس آیا به شما پیامبرانی از خود شما نیامدند که بر شما آیات مرا میخاندند و شما را از روبرو شدن با این روز میترساندند میگویند به خیشتن گواهی دادیم. و زندگی دنیوی ایشان را فریب داده بر خود گواهی دادند که ایشان کافر بودند این به خاطر آن است که پروردگارت هیچ گام مردم شهرها و آبادیها را به خاطر ستمهایشان در حال غفلت و بی خبری نمی کند. و من درجات زن ما عملو و من رفت کد برای هر یک از این دو دسته درجات و مراتبی از آنچه عمل کردند و پربستگارت غافل از اعمالی که انجام میدهند نیست وربك الغني تو بنياز و صاحب رحمت است اگر بخواهد شما را از بین می برد و بعد از شما فرک را بخواهد جانشین می ساتد چنانچه شما را نیز از نسل مردم دیگر آفرید بیگمان همه چیزهایی که به شما وعده شده است حتما آمدنید به هرگز شما آجست ساختن نمی توانید. یعنی تقدیر خدا را تغییر دادن نمی سبانید فسوف <تصفح> تعلمون من بگو ای مردم من هرچی توانید بکنید من هم به سهم خود هرچی میتوانم انجام میدهم و زودی خواهید فهمید که سراغ آخرت از آن کیست واقعیت امر این است که ستمگاران رستگار ننیشبن و پس آنچه خداوند از کشت و چهارپایان آفریده حصهای را به خداوند مقرر داشتند و مطابق به پندار خیش می میگفتند این برای خداوند است و این هم برای شریکان ما اما حصۀ شریکان ایشان به خداوند نمیرسد و آن حصهای که برای خداوند تعیین شده است پس آن به شریکانشان می و در آنچه ایشان وكذلك زين لكثير من المشرقين قتل أولادهم شركاؤهم ليبذوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفتر همچنان برای بسیاری از مشرکان شریکانشان کشتن اولادشان را یک عمل شایسته تجل داده بودند تا ایشان را تباه کنند و دینشان را بر آنها مشتبه سازند و اگر خداوند میخواست ایشان چنین نمیکردند، پس ایشان و تهمتهایشان را به حال خود بگذار وحظ حجر لا يطعمها إلا من نشاء بذعبهم لا يطعمها إلا من نشاء بذعبهم وأنعام حرمت بهورها وأنعام حرمت بهورها وأنعام با گفتند این قسمت از چهار پایان و زراعت که مخصوص بطه برای همه ممنوز و جز کسانی که ما بخافیم با گمان آنها از آن نباید بخورد و می گفتند اینها چهار پایانیست که سوار شدن بر آنها تحریم شده و چهار پایانی که نام خدا را بر آن نمی بردند و به خدا دروغ می بستند و می گفتند این احکام از ناحیه اوست و زودی کیفر افتراهای آنها را می دهد وقالوا ما في بخون هذه الأنعام خالطة لذكورنا ومحظهم على أزواجنا وإن يكون ميتة فهم فيه شركاء فيجزيهم وففهم إنه حسيم عليم و گفتند آنچه در شکم این حیوانات از جنین و بچه وجود دارد مخصوص مردان ماست و بر همسران ما حرام است. اما اگر مرد باشد یعنی مرده ولد شود همگی در آن شریکند و به خدا کیفر این توصیف و احکام دروغین آنها را میدهد. او حکیم و داناست. قد قصروا الذين قتلو أولادهم سفها علم و ما رزبهم الله على الله بیگمان کار که اولاد خود را از روی نادانی جاهلانه کشند. با آنچرا خداوند به ایشان روزی گردانیده با گونه افترا بر خداوند با, با خدا خود حرام کردند. ایشان واقعاً گمراه شده اند و هرگز رهیاب نبودند. و هو اللّذي أنشأ جنّاً معروشاً و غير دخل وزرع مختلف ثمره والزيتون والرمان والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه قلوا من ثمره إذا أثمر وأتى حفظه يوم حصاده ولا تسره. اینه لا يحب المسریفین اوست که باغهای معروش یعنی چترداری که درختانش روی چیله قرار میگیرند و باغهای غیر معروش درختانی که نیاز به چیله ندارند آفرید و همچنین نخل و انواع زراعت را که از نظر میوه و تعم با هم متفاوتند و نیز درخت زیتون و انار را که از جهتی با هم شبیه و از جهتی تفاوت دارند یعنی برگ و ساختمان ظاهریشان شبیه یکدیگر است در حالی که طعم میوهی آنها فوق الادم متفاوتند از میوهی آن به هنگامی که به ثمر شیند بخورید و حق آن را به هنگام درو بپردازید اصراف نکنید که خداوند مستفین را دوست نمی دارد و من الانام حموله و فوشا قلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا قوات الشيطان انه لكم عدو مبين باوزات اسکر چهار طاغن برای شما حیوانات باربر و حیوانات کوچک آفرید از آنچه او به شما روزی داده است بخورید و از گامهای شیطان پیروی ننمایید که او دشمن آشکار شماست تمانیت ازواج من افضا حسنین و قل از اما اشتملت علیه اوحام الانفیرین نبی اونی بعلم این کنتم صادقین هاش شور هیوان آفرید از گوزفن درعف و از بز درعف یعنی از هر یک نر و ماده بگو آجا خداوند دونر را حرام کرده است یا دو مادر را یا چوته ای را که رحمهای آنها در بر گرفته است اگر شما راستگو هستید به اساس علم به من جواب گوید. قولا فترى حر ما انتي امم استملت عليه احقام البن فيين ام كنتم سوداء اذ والصاف الله بهذا فمن من اظلم من من الله کذبا لی الناس بغیر علم این الله لا یهزی القوم الظالمین از شطر درعس و از گاو درعس یعنی از هر یک نر و ماده بگو آیا خداوند دو نر را حرام کرده است یا دو ماده را یا چوچه را که رحم ماده های آن در بر گرفته است آیا وقتی که خداوند به شما چنین حکم را صادر کرد حاضر بودید پس کی کیس ستمگارتر از کسی که دروغی را بر خداوند بربندد تا به دین وسیله مردم را به نادانی گمراه سازد حقا که خداوند مردم ستمگار را رخیاب نمی کند. قل لا أجب بما أُحِيَ إليه محظَّما على قَرِي يَطْعَمُهُ إلَّا أَيَّ يَكُون مَيْتَهُ إلَّا أَيَّ يَكُون مَيْتَةً أَو ذَمَّ أو لحم خنزیر فا رجس او فسق او الا لغیر الله به فمن از قرر غیر باز ولا عاد فا این غفور رحمی بگو در آنچه بر من بحی شده هیچ حرامی بر کسی که غذای می خورد نمی و بجز این که مردار باشد یا خونی که از بدن حیوان بیرون ریخته یا گوشت خوک که اینها همه پلیدند یا حیوانی که در طریق گناه به هنگام سربریدن نام غیر خدا یعنی نام بتها بر آنها برده شده است اما کسانی که ناچار شوند بدون اینکه به خاطر لذت باشد یا زیاده از حد بخورند گناهی بر آنها نیست پربرکار تو آموزنده مهربان است. وَالَّذِينَ آتَوْا حَلَالًا طَيِّبًا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا حُمِّلَتْ ذَهُورُهَا مَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ و بر یهودیان هر حیوان نخندار حیوان که سم یک پارچه دارند را حرام کردیم و از گاو و گوسفند پیا و چربیشان را تحریم نمودیم مگر چربی چربیهایی که بر پشت اینها قرار دارد و یا در لابلای امعاء و دو طرف پهلوها و یا آنها که با استخوان آمیخته است این را به خاطر ظلم و ستمی که می‌کردند به آن ها پی و ما راست می گوییم کذبوا کفر ربکم کنند و این حقایق را نپذیرند و آنها بگو پروردگار شما رحمت وسیعی دارد اما در عین حال مجازات او از مجرمان دفع شدنی نیست. یقول الذين من قبلهم حتى ذاكوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تحرحون و زودی مشرکان برای تبرعی خیش می گویند. اگر خدا می خواست نه ما مشرک می شدیم و نه پدران ما و نه چیزی را تحریم می کردیم کسانی که پیش از آنها بودند نیز همین گونه دروغ می گفتند و فرانجام تأمن کیفر ما را چشیدند بگو آیا دلیل قاطعی بر این موضوع دارید؟ پس به ما اراعه دهید شما فقط از پندارهای به اساس پیروی می کنید و تخمین های نابجا میزنید بگو برای خدا دلیل رسا و قاطی طوری که بحانه برای هیچ کسباقی باقی اما اگر او بخواهد همه شما را از طریق اجبار هدایت میکند قل هَلُمَّ مَشَآءَ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ عَلِمَ مَا آذَنَ تَأِي شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُوا مَعَهُمْ وَلَا تَسْتَبِقُوا الذين كذبوا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم بگو آن گواهان خیش را که بر این گواهی می دهند که خداوند این را حرام کرده است بیاورید پس اگر ایشان گواهی دادند تو با ایشان گواهی مده باز هوای نفس کسان پیروی مکن که آجات ما را دروغ پنداشتند و آنهایی که به آخرت ایمان ندارند و به با پروردگار خود دیگران را برابر میکنند قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرفو بهی شیئن و بالوالدین احسانا و لا من إملاة نحن نغذبكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظار منها وما بضت ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحسب ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون بگو بیایید چیزهایی را که پروردگار شما بر شما حرام کرده است بخوانم اینکه به او هیچ چیزی را شریک نیاورید با مادر و پدر خود نیکی ورزید اولاد خود را از ترس ناداری مکوشید، ما شما و آنها را روزی می دهیم و فحشا آنچه آشکارا باشد از آنها و آنچه پوشیده باشد نزدیک نشوید نفسی را که خداوند حرام کرده است مکشید مگر به إن حكم را خداوند به شما توصیه‌کرد تا باشد که بفهمید ولا تقهروا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن حتى يبلغ استه و انقل كيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها و اذا قلتم تعدلون و لو کان ذا قربا و به عهد الله اوکو ذالکم و بهی و به دارایی یتیم نزدیک مشوید مگر به شیوهی که بهتر است تا به سن رشد خود برسد پیمانه و وزن را با انصاف و به صورت کامل ادا کنید ما بر هیچ کس باری را نمی گذاریم مگر به اندازه او، چون سخن می گویید پس انصاف فارفید. اگر اگرچی درباره خیشا بندان باشد و با به با پیمان خدا وفا کنید و بدین ترتیب خداوند به شما توسیه کرد تا باشد که پند پذیر شوید وَأَنَّ آذَ اَفْرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَبِعُوهُ وَلَا تَتَتَبِعُ السُّولَ فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَفْصَاقُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ بیگمان إِنَّ است راک من راک راک پس ان را پیروی کنید و راهای را که شما را از که او دور میسازد به این ترتیب به شما توصیه کرد تا باشد که پرهیزگاه شوید ثم <تصفيق> اتینا موسى الكتاب تماما على الذين احسنوا وتفصيلا لكل شيء وَتَفَصِيلَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ سپس با موسی کتاب را دادیم تا بدین وسیله نعمت خیش را بر نیکوکاران تمام کنیم و همه چیزها را تفصیل نماییم و تا هدایت و رحمتی باشد تا باشد که ایشان به ملاقات پربرگاری پیش ایمان آورند. و, و, و این کتابی است که ما آن را فرستادیم. مبارک است پس آن را پیروی کنید و از خدا بترسید. تا باعثت موده رحمت قرار کرد. آن تقول: انما أنزل الكتاب على قايتين من قبلنا وإن كنا عند راتهم لغات لين. تا کتاب تنها به دو قوم پیش اسم آ. یعنی یهود و نصارا فرساده شده بود و ما به از درس و تدریس ایشان خبر مانده بودیم او تقول لو ان انزل علينا الكتاب لکننا اهتنا منهم اقدر جاء ربكم وهدوه ورحمه فمن أظلم ممن كذب بايات الله وقلت عنها تنجد الذين عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصرفون يا <تصفيق> اگر واقعا كتاب برای ما نازل شد؟ ما رحیاب تر از ایشان می بودیم واقعاً به شما حجتی از جانب پروردگار شما و حدوجتی و رحمت آمده است پس کیست ستمگاه تر از کسی که آیات خداوند را تکذیب کند و از آن رو گرداند به زودی کسانی را که از نشانه ما رو میگردانند گردانند به بسترین عذاب سزا می دهیم به سبب آن اعراض میکردند.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 آیا انتظار میکشند اینکه فرشتگان پیش ایشان بیایند یا پروردگار تو بیاید یا بعضی از نشانهای پروردگار تو بیاید روزی که بعضی از نشانهای پروردگار تو بیاید ایمانی کافی که پیشتر به آن اعتقاد نداشته یا به اعتقاد خیش کار نیکی انجام نداده سودی ندارد بگو انتظار بکشید مانید در انتظاری. این الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعًا لَسْتَ مِنْ اُمْ بیگمان کسانی که دین خیش را پراگنده ساختند و گروه گروه شدند تو را با ایشان هیچگونه سر و کاری نیست بیگمان کار ایشان به خداوند محول است سپس ایشان را به حقیقت همه اعمالی که مستکب می شوند آگاه می سازد. من جاء بالحسنت فلهم عشر امثالها و من جاء بالسیئت فلا يجزا الا مثلها و غملا نظلمون هران کار شایستهی انجام دهد ده مزد ان را ده چند در میافد بحران که عمل بدی را مرتکب گردد مجازات نمی مگر به مثل آن و به ایشان ستم نمی شبد قل این نیادانی ربی الی صراط مستقی من دینا قیمم و ما كان من المشرقین بگو حقا که مرا پروردگارم براک راس رهنموی کرده است دین استوار ملت ابراهیم حنیف و او در سمری مشرکان نبود قل این صلاتی و نسفی و مخیای و مماتی لله رب العالمین بگو بیگمان نماز من مناسک من زندگی من و مرگ من همه برای خداوند پروردگار جهانیان است شیوآنکه برای او شریک نیست به این امر شده ام و من از نخستین مسلمانانم قل أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي وَالتَّنُّ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكُنْ نَفْسٌ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ تُمَثِّلُونَهُ ۚ إِنَّمَا بِمَا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ بگو آیا غیر از خداوند کسی دیگر را به حیث پروردگار بجویم؟ در حالی که او پروردگار همه چیزهاست و هیچ کسی هیچ کاری را نمی کند مگر آن که پیامد آن بر خود اوست و هیچ بردارنده بال دیگری را بر نمی‌دارد. سپس سپس بازگشت شما به سوی خداوند است و او شما را به آنچه در آن اختلاف برزیدید أوَقَهْ oh مِسَادَهُ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْفَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا أَتَكُمْ إِنَّ رَبَكَ تَرِيُّ الْأَيْقَادِ وَإِنَّهُ لَرَبُّ وَحِيمٍ او ذاتی که شما را جانشینان خود در زمین گردانید و بعضی شما را از بعضی دیگر به درجاتی برتر قرار داد تا شما را در آنچه به شما ارزانی کرده است آزمایش کند بیگمان پروردگار تو در عذاب کردن سریاست و بیگمان او واقعا آمرزنده و مهربان است